بعض هم قائلان خب اضافه شدنش درست سیاده ولی به اندازه‌ای که اضافه نه محصه چیه؟ سرکیه؟ ربکیه؟ محصه نهدی؟ نداره؟ نزا میگه با اخترم و ما بعدم باب رو. با باب و باب بندش رو که صافت ما نیست باید رو اسم مفهوله اخترم رو فرم کافیه تیره تسریف و کرده در کتاب کافیه به جای باب تسریف در اونجا حالتش شد شد؟ بگه محصه نه هر هست از, از این کاری که بگید این جا کنه کار اونجاش بهتره چون برده تو بابه خودش منقصه سرفیه این در بابه سرف همزیدیشه این که گرده خوباً اند سرف خب مناسب تره خود چون بابه سرف نه و احکامش با هم بادیدی که نمیشه خسمت نه بگید نه بخونیم تواه میشه و از سرفش میشه یه خسمتی هم تو سرف نمیشه این هم رفته بین همسر همسنخ ها بعد هم اعمال اسم مفهول چون عمل اینها را در علم نمی بکنیم پس بهتر اینه که تردن در چی بشه خودی کلماتی بستن بس باید اسم مفهول هم بشترس چیست. یعنی اینجا احکام اینها رو داریم بگیم خب حالا خودشون هم از نظر ساخت بگیم مناسب با احکام نمی شون بگیم هست بذاریم مناسبت اینجا هم Ha ha ha! و مصدرش باز و بحث پس مستر غیله متعدی که سه باشه مصدر فاعلش یا است مثل رد پس یه موسوم نمی‌کرد. یعنی به اینا هم فعل اون تو بیت قدم ما دو تاشون خونده فعله متعدی فعله که نداره گفت مصدر قالیه فعل و فعل متعدی بر وصفه می سوارش می سوی کاماره وا بعد بابش چیه؟ تعارض یعنی باب مسئلهش به بحث میگه سماع سوالی که از صحیح و مصاب است در Thank sure. you. of Jesus. <laughs> at the moment زهبه قدا مسترش کاری چی؟ قدو به ترادم به ترادم چه قدا اون چه قدا یعنی مثال اون چه خبر یه دونه قدم مثال زده یه دونه برتر آدم متعلق به متعلق کناد است. بگید متعلق به نخوز، متعلق به متعلق نخوز است. مشرف علیی که لازم است در حال سوالش هم مثل چی؟ بدا. پس به که بود. مثال مثال زده؟ قدام قدام حالا مثلا وقفن یقف و دو وقوفن وقفن یفد و وقودن رسیدن وقفن این اطلاع پیدا کردن مسترش چی اومده؟ اومده هر دو مثال حال یهولو حال ناقص فرق نمی کنه مثال عجبت بشن اسم همون که من مثال بارم وقتم وقوع هم وقتم وقوع هم کارم وقوع هم پس بنابراین چی گفت خب فعلایی که لازمه مثل قهده مسترش بچه وزنی میان وروزن می فقول میان گفت این زیاده از این که گفت زیاده معلوم میشه که قلیدن وروزنهایی میگه هم بگید زیاده مالم یکون مستوجبن فعالن او فعالن فدره او فعالن میگه ایس وزنش بروزن فعالن مالم یکون مالم یکون ماشمای مستقیه زدیگه است متعلق به همون وف علی تازم مثل قاعده ثابت است برای او فاعل به اطراضی ثابت است برای او در چه وقت در وقتی که لم یکن مستوجب باشد فعال در وقتی که اون نه مستوجب و مستحق وزن فعال بکید نباشد یعنی یه جایی میرسه که مستحق وزن بکید فعال میشه مثل فرض کن کنید یه بازم filt و فعالان به فتح الفاه و فدره میگه این دوتار بدون او فعالنگا فعال میاد به زم الفاه به زم الفاه فعال دیگه وزن ای نشونه میگه چون, چون ای چیه قبل از علی فعال و چیه عمل یا به زم الفاه عمل فری یا مستحق وزن فعیل بکیه نباشه اول به یا مستحق وزن فعاله نباشید به کسره با چی گفتیم خلاسه گفتیم گفتیم فعلی که لازمه است مثل قاعده مستر او قبول است به کسره مگر آن که مستحق وزن فعال یا فعالان یا به طور قاربی چیه و از شو شکفه بوده هست. حالا بگیم این پنج رو بزن کجاها میاد یکی یکی شروع میکنه و اولون باقای آتفه که بفید نتیجه هم هست اولون محتدا هست اگه بگیم مصفقش بگیم در واقع محتدا مثل نکرتون ما بلاهنه که بودی اسم یعنی اسمون چی؟ وزنون اولون وزن اول خودون بود وزن اول؟ فعال فعالون یعنی فوزنون اولون پس اون وزنی که اوله اول افران راقش شده وزن فعال لذیه امتناره برای اون فعلیه که دلالت مثل چی؟ که عبا. یعنی مثالو که عبا الان چی؟ اومده یعبا بلوست یک قدر که لامون فلش حد و هر عبا عبا سر سر. این عبا مصادش اومده چی؟ عبا عبا و مستحق چی شده وزن فعال شده چرا؟ بانچی لدار تو آدان لدار اولا باستن تو آدان بگیر میگه برن سه بان سه برنه. chamada sair Ha, ha, una de mostrar class yeah.